حکایت آن مجاهد، آن یکی بودش به کف در چل درم، هر شب افگندی یکی در آب یم. تا گردت سخت بر نفس مجاز، در تعنی درد جان کندن دراز، با مسلمانان به کر او پیش رفت. وقت فر او وا نگشت از خزم تفت زخم دیگر خورد آن را هم ببست بیست کرد رم و تیر از وی شکست بعد از آن قوت نموند افتاد پیش مقعد صد او سه صدق عشق خیش صدق جان دادن بود این از نوبی برخون رجالون صدقون. این همه مردن نمرگ صورت است. این بدن مر روح را چون آرت است. ای بسا که ظاهر خون شریخت. لیک نفس زنده آن جانب گریخت. آرتش بشکست و رهزن زنده مان. نفس زندست در چه مرکب خون فشاند عصب کشت و راه او رفته نشد جز که خام و زشت و آشفته نشد گر به هر خون ریزی گشتی شهید کافری کشته بودی هم بوسعید ای بسا نفس شهید معتمد مرد در دنیا چو زنده می رود روح رهزن مرد و تن که تیغ اوست هست باقی در کف آن غز جوست تیغ مرد آن تیغ است مرد و مرد نیست لیک این صورت را حیران کنیست نفس چون مبددل شود این تیرهتن با در دست سنعه ظلمنن، آن یکی قوتش داد. بندگر مردی است قووتش جمله داد وندگر مردی میانی می همچ کرد.